ژن خودخوا نوشته ریچارد تاکینز فصل چهارم بخش 2 یک راه برای اینکه ژن‌ها بدوانند مسئله پیش بینی در محیط های تقریبا غیر قابل پیش را حل کنند ایجاد ظرفیت برای یادگیری است در اینجا ممکن است دستورالعمل به این شکل به ماشین بقا داده شود این فرسته چیزهایی که رضایت بخشند لستعمه شیرین در دهان، اوج لذت جنسی، دمای ملایم و خنده کودک و این سیاهی چیزهای ناخوشایند است. انواع مختلف درد، تعو، شکم گرسنه و گریه بچه. اگر به طور اتفاقی کاری کردید که بعد از آن یکی از آن چیزهای ناخوشایند پیدا شد، دیگر آن را انجام ندهید، ولی برعکس، کاری را تکرار کنید که بعد از انجامش یکی از آن چیزهای فهرست خوب بیاید. فایده این نوع برنامه ریزی این است که واقعا تعداد قاعده های مفصلی را که باید در برنامه گنجانده شود کم میکند. همچنین از پس تغییرات محیطی که به طور دقیق قابل پیشبینی نیست برمیآید. با این اوصاب هنوز در بعضی موارد باید پیشبینی صورت بگیرد. در مثال ما، جنها پیشبینی می کنند که حس تعم شیرین در دهان و اوج لذت جنسی باید خوب باشند. به این مفهوم که خوردن شکر و همبستر شدن با یک جفت احتمالا برای بقای جنها مفید است. بر اساس این نمونه احتمال وجود قند مصنوعی و پیش پیشبینی نشده است و همچنین خطرهای زیاد روی در خوردن قند، که دور بر ما به شکل مصنوعی فراوان یافت می شود در نظر گرفته نشده است در بعضی برنامه های کامپیوتری بازی شطرنج از راهکارهای یادگیری استفاده شده است این برنامه ها وقتی با انسان یا کامپیوترهای دیگر بازی می کنند به تدریج بهتر می شوند گرچه آنها به همه قواعد و روش ها مجهزند، ولی در مسیر تصمیمگیریشان کمی تمایل تصادفی هم کارسازی شده است آنها تسلیم هایی را که در بازی ها میگیرند ثبت می, می کنند و هر بار که در یک بازی برنده شوند کمی وزنه روش های به کار گرفته در آن بازی برنده را سنگین تر می کنند به طوری که این احتمال کمی بیشتر می شود که بعدا باز از آن روش ها استفاده کنند یکی از جالب ترین روش های پیش آینده شبیه سازی است اگر فرماندهی ای بخواهد دریابد که آیا نقشه خاصی از نقشه های نظامی دیگر بهتر است با مشکل پیش بینی مواجه است در وضع هوا در خلق و خوی افرادش و در ضد عملیات احتمالی دشمن کمیتهای ناشناخته ای وجود دارد یک راه برای فهمیدن اینکه نقشه خوب است یا نه این آن را امتحان کنند و متوجه شود اما امتحان همه نقشه های احتمالی که به ذهن میرسد کار مطلوبی نیست فقط به این دلیل که تعداد مردان جوانی که آمادهاند در راه وطن جان خود را فدا کنند زیاد است و تعداد نقشههای ممکن هم کم نیست بهتر است به جای اجرای کاملا واقعی ها آنها را به صورت آزمایشی امتحان کنیم مثلا به شکل جنگ تمام عیار سرزمین شمالی با سرزمین جنوبی با مهمات مشقی، گرچه ممکن است این کار نیز، از نظر زمان و تجهیزاتی که نیاز دارد گران تمام شود، نمایش جنگ میتواند با ریخت و پاش کمتر، با جابجا کردن سربازهای فلزی و تانکهای کوچک اسباب بازی روی یک نقشه بزرگ صورت گیرد. اخیرن کامپیوترها بخش عمده ای از کار شبیه را به عهده گرفتند، نه فقط در فن راهبرد نظامی بلکه در همه رشته هایی که پیش بینی آینده در آن لازم است مانند اقتصاد، بوم شناسی، جامعه شناسی و بسیاری از رشته های دیگر روش کار چنین است مدلی از جنبههایی از جهان در کامپیوتر ساخته می شود نه به این معنی که اگر پیش سرپوش آن را باز کنید یک موجود مینیاتوری یا ماکتی کوچک از چیزی که شبیه سازی شده در آن می بینید. در کامپیوتر شطرنج باز درون بانک حافظه هیچ چیزی نخواهید یافت که از یک صفحه شطرنج که روی آن سرباز اسب قرار دارد وجود داشته باشد صفحه شطرنج و وضعیت موجود آن را به شکل اعدادی که به صورت الکترونیکی کدگذاری شده آن نشان می دهند. یک نقشه برای ما یک مدل ریزنقش از بخشی از جهان است که در دو بعد فشارده شده است در کامپیوتر ممکن است نقشه به صورت فهرستی از نام شهرها و نقاط دیگر با دو عدد که از طول جغرافیایی را نشان میدهند نمایانده شود ولی اینکه کامپیوتر واقعا به چه صورت آن مدل را در ذهن خود نگاه میدارد مهم نیست مهم این است که آن را به صورتی نگه دارد که بتواند به کارش گیرد تغییراتی در آن بدهد آزمایشهایی را با آن انجام دهد و با اصطلاحاتی که برای انسان کاربر قابل درک باشد گزارش کار را بدهد با شیوه شبیه نیروهای ساختگی ممکن است برنده یا بازنده شوند هواپیماهای مدل می پرند یا در هم سیاستهای اقتصادی یا رفاه یا فلاکت به بار میآورند. در هر مورد کل جریان در کسر کوچکی از زمان که در واقعیت طول می کشد، درون کامپیوتر انجام می گیرد. البته مدل‌های جهان نیز خوب و بد دارند. تازه مدل‌های خوب هم چیز تقریبی‌اند. هیچ میزان از شبیه‌سازی نمی‌تواند دقیقاً پیش‌بینی کند که در واقعیت چه روی خواهد داد. اما یک شبیه‌سازی خوب خیلی ترجیح دارد به یک آزمون و خطای کورکورانه. شبیه‌سازی را می‌توان آزمون و خطای قراردادی نامید. اصطلاحی که متأسفانه مدت‌هاست روانشناسان موش آن را از معنا توهی کرده اگر شبیه سازی تا به این حد فکر جالبی است باید انتظار داشته باشیم ابتدا توسط ماشین های بقا کشف شده باشد. مگرنه این است که همه راهکار مهندسی باشد قبل از اینکه ما در صحنه حاضر شویم توسط آنها اختراع شده بود. سازوکار دسی های قانونی، آینه های صحوی، تحلیل بسامد امواج صوتی، کنترل خودکار، سونار، حافظه اطلاعات ورودی و شمار دیگری از این اسمهای طولانی که مهم نیست جزئیاتشان چه باشد. اما شبیه سازی چیست؟ خب وقتی خود شما لازم باشد تصمیم مشکلی بگیرید که به کمیت نامعلومی در آینده مربوط می شود. یک جور شبیه سازی انجام می دهید. مجسم کنید در صورتی که هریکی از حالات ممکن رخ دهد چه اتفاقی خواهد افتاد. مدلی در ذهن خود میسازید. که نه از همه چیزهای دنیا بلکه از تعداد محدود چیزهایی که به نظرتان به موضوع مربوط است تشکیل می شود شاید آنها را به وضوح در چشم ذهن خود ببینید یا در تصویری که از آنها در ذهن خود دارید تغییراتی ایجاد کنید در هر صورت چنین نیست که در ذهنتان یک مدل فضایی واقعی از چیزهایی که تصور می کنید وجود داشته باشد بلکه درست مثل کامپیوتر جزئیات این امر که چگونه ذهن مدلی را از جهان ارائه می کند کم اهمیتتر از این است که چگونه میتواند با استفاده از آن رویدادهای احتمالی را پیش بینی کند ماشینهای بقایی که آینده را سازی می می‌کنند یک گام جلوتر از ماشینهای بقایی هستند که فقط بر اساس آزمون و خطای قابل مشاهده پیش میروند گرفتاری آزمون قابل مشاهده این است که وقت و انرژی زیادی لازم دارد اشکال خطای سر راست یعنی قابل مشاهده این است که اغلب مرگبار است. شبیهسازی هم امطر است و هم سریع تر. به نظر می‌رسد پیشرفت در توانایی سازی به آگاهی ذهنی انجامیده باشد. از نظر من این سوال که چرا باید چنین چیزی رخ داده باشد، مهمترین معمایی است که در مقابل زیستشناسی امروز قرار دارد. دلیلی ندارد فرض را بر این قرار دهیم که کامپیوترهای الکترونیکی هنگام شبیهسازی آگاه هستند گرچه باید بپذیریم که ممکن است در آینده چنین شود شاید وقتی آگاهی پیدا می‌شود که شبیهسازی جهان در مغز آنقدر کامل شده که مغز می‌خواهد مدلی از خود نیز داشته باشد معلوم است که اعضا و بدن یک ماشین بقا باید بخش مهمی از جهان شبیهسازی شده آن را تشکیل دهد شاید به چنین دلیلی خود شبیه سازی را بتوان بخشی از جهانی که باید شبیه سازی شود در نظر گرفت در واقع شاید از خداگاهی بشود به عنوان یک واجه دیگر برای آن استفاده کرد اما من این را یک توضیح کاملا قانع کننده برای تکامل آگاهی نمیدانم بلکه فقط به عنوان بخشی از قضیه است به این دلیل که به این ترتیب میشود بی نهایت بار به عقب برگشت اگر ممکن است مدلی از آن مدل وجود داشته باشد چرا مدلی از مدل مدل آن وجود نداشته باشد جدا از مسائل فلسفی که ناشی از آگاهی هستند در مورد اهداف این کتاب میتوانند را حد اعلای یک روند تکاملی دانست که در جهت رهایی ماشین بقا به عنوان مسئولین اجرایی از اربابان نهایی یا ژنها دانست مغز نه فقط انداختن امور روزانه ماشین رو عهده دارد، همچنین باید توانایی پیش بینی آینده را کسب و بتواند مطابق آن عمل کند. مغزها حتی این استعداد را دارند که در مقابل استبداد ژنها شورش کنند. مثلا نخواهند همه آن تعداد بچه های ممکن را داشته باشند. اما همونطور که خواهیم دید، بشر از این نظر یک مورد بسیار استثنایی است. ربط این موضوع به ایسارگری و خودخواهی چیست؟ من سعی دارم این فکر را جا بیاندازم که رفتار حیوانات چه ایثارگرانه چه خودخواهانه فقط به یک مفهوم غیر مستقیم ولی پرقدرت تحت کنترل جن ها است. ها جنها با تاثیرگذاری روی ساخت ماشین های بقا و دستگاه عصبی آنها اوج قدرت خود را در رفتار به نمایش میگذارند. اما تصمیم های لحظه به لحظه و اینکه لحظه دیگر چه کنیم را دستگاه عصبی میگیرد ژنها سیاستگزاران اولیه اند مغزها عامل اجرایی اما وقتی مغزها به قدری پیشرفت کنند که به سطوح بالا می‌رسند، به تدریج تصمیم های سیاست سیاستگزاری بیشتری را به عهده گیرند و در این را، از فوتوفنهایی مثل آموختن و شبیهسازی سازی استفاده میکنند. پیامد منطقی این روند که هنوز هیچ گونه ای با آن نرسیده است این است که ژن فقط یک دستور کلی به ماشین بقا بدهند. هر چه خودت برای زنده نگه داشتن ما صلاح میدانی انجام بده. مقایسه کامپیوتر با تصمیم بشر همه بهجا بود. ولی حالا باید به واقعیت برگردیم و فراموش کنیم که تکامل در واقع گام به گام و از طریق تفاوتی که جنها از نظر بقا در خزانه ژنی دارند رخ میدهد. برای اینکه یک الگوی رفتاری ایثارگرانه خودخواهان شکل بگیرد لازم است که در خزانه ژنی ژن جن آن رفتار از ژنی که رقیب یا آلل آن برای رفتار دیگر دارد موفقتر باشد ژن رفتار ایسارگرانه یعنی هر ژنی که روی رشد دستگاه اعصاب طوری اثر میگذارد که در آن تمایل به رفتار ایسارگرانه تولید میکند آیا هیچ نشانه واقعی وجود دارد که حاکی از به ارس رسیدن ژن رفتار ایسارگرانه باشد خیر ولی جای تعجب ندارد به این دلیل که مطالعه زیادی بر روی ژنتیک رفتار صورت نگرفته است در عوض بگذارید از مطالعه الگوی رفتاری صحبت کنند که به ظاهر ایثارگرانه، ولی آنقدر پیچیده است که میتواند جالب باشد میتوان از آن به عنوان مدلی برای نشان دادن چگونگی به عرث رسیدن رفتار ایسارگرانه استفاده کرد زنبورهای اصل یک نوع بیماری و افونی دارند که لک لارو زنبوران نام دارد این بیماری به نوزاد حشره در خانهاش حمله میکند از طغنهای محلی که مورد استفاده زنبوران قرار میگیرد. بعضی بیشتر از بقیه در معرض خطر لک زنبوران هستند. و معلوم شده است که تفاوت بین این گرایش موروسی دستکم در بعضی موارد یک تفاوت رفتاری است. نجادهایی به نام نژاد بهتاشتی وجود دارند که با شناسایی نوزادان و آلوده و بیرون کشیدن آنها از خانشان و بیرون انداختنشان از کندو بیماری را به سرعت ری شکن نجد آسیب پذیر آسیب می زیرا این نوزاد کشی بهداشتی را انجام نمی دهن. رفتاری که عملا به بهداشت بربود می شود بسیار پیچیده است. هست زنبوران کارگر باید تک تک خانه نوزادان مبتلا را شناسایی کنند روکش مومی آن را بردارند و لارو را از آن بیرون آورند تا در کندو آن را بکشند و بیرون در محل زباله ها بیندازند دلایل مختلف انجام آزمایش های با زنبور کار بسیار مشکلی است. خود زنبور های کارگر معمولاً تولید مثل نمی کنند و بنابراین باید ملکه از یک نژاد را با زنبور نری از نژاد دیگر آمیزش داد و بعد رفتار فرزندان کارگر یعنی زنبور کارگر به وجود آمده از آنها را بررسی کرد. این کار را و که بوهلر انجام داده است. او متوجه شد که در تمام کندوهای نوزاد جدید، یعنی درگه، نسل اول غیر بهداشتی بودند. به نظر می رسد رفتار بهداشتی والدشان را از دست داده بودند. گرچه بعدا معلوم شد ژن بهداشتی بودند به صورت مغلوب در آنها وجود داشت. مثل ژن چشم آبی در مورد انسان، وقتی روتن بار دیگر نسل اول آنها را با نژاد کاملا بهداشتی آمیزش داد. البته باز هم با استفاده از ملکه و زنبورهای نر به نتیجه بسیار زیبایی رسید. کندوهای جدید نوزاد سه گروه بودند. یک گروه رفتار کاملا بهداشتی نشان میداد، گروه دوم اصلا رفتار بهداشتی نداشت و سومین گروه آن را نیمه کار انجام میداد. گروه آخر روکش مومی را از روی خانه نوزاد مبتلا برمیداشت اما ادامه کار و بیرون انداختن لارو را انجام نمیداد روتمبرلر زد شاید دو ژن جداگانه یکی برای برداشتن روکش مومی و یکی برای بیرون انداختن وجود داشته باشد نجات های بهداشتی معمولاً هر دو ژن را دارند نجاتهای آسی پذیر به جای این ژن ها رقیب آنها یعنی آللشان را دارند دو راگه هایی که نصف کار را انجام میدادند احتمالاً ژن برداشتن روکش را به میزان دو برابر داشتند ولی ژن بیرون انداختن را نداشتند. روتنبرگر احتمال داد که آن گروه آزمایشی که همه به ظاهر غیر بهداشتی بودند، شاید به صورت پنهان در یک زیرگروه ژن دور انداختن را داشت. اما اثر آن نمی‌تواند ظاهر شود زیرا ژن برداشتن روکش موجود نبود. یقینا نمی‌استن زنبورهای به ظاهر غیر بهداشتی اگر آن را داشتند رفتار کاملا عادی بیرون انداختن را نشان میدادند این داستان چند نکته مهم را که در فصل قبل مطرح شده به نمایش میگذرد نمایش می‌دهد که به از ژن فلان رفتار صحبت کنیم حتی اگر کوچکترین تصوری از زنجیره شیمیایی مراحل تکوین از ژن تا آن رفتار را نداشته باشید زنجیره علت و معلول ها حتی ممکن است یادگیری را هم شامل شود برای مثال ممکن است اینطور باشد که ژن برداشتن روکش خود را به صورت تمایل به موم مبتلا بروز دهد یعنی زنبوران کارگر احساس رضایت بخشی از خوردن موم روکش خانه ی نوزادان مبتلا پیدا کنند و بنابراین میل به تکرار آن داشته باشند حتی اگر شیوه کار آن ژن همین باشد هنوز در صورتی برداشتن روکش محسوب میشود که در شرایط یکسان زنبورهایی که این ژن را دارند روکش را بردارند و زنبورهایی که این ژن را ندارند روکش را بر ندارند در بهلهٔ دوم این واقعیت را نشان میدهد که جنها در تأثیری که روی ماشین بقاع همبودشان دارند با هم تشریک مسایی میکنند اگر ژن بیرون را ژن برداشتن روکش همراهی نکند بیفایده خواهد بود اکس آن هم همینطور است با این حال آزمایت های با همین حضور نشان میدهند که این دو ژن در که که نسل ها داشتند همواره به طور کامل از هم مستقل بودند در مورد کار مفیدی که انجام میدهند میشود آنها را یک واحد تعاون در نظر گرفت اما به عنوان جنهای تکثیر شونده دو عامل آزاد و مستقل محسوب میشوند در این استدلال لازم است برای انجام انواع کارهای محتمل نیز ژن در نظر گرفته شود برای مثال اگر من از ژن فرضی نجات همراهان در حال غرق شدن صحبت کردم و به نظر شما چنین چیزی باور نکردنی آمد داستان زنبورهای بهداشتی را به یاد بیاورید یادتان باشد ژن از نظر ما تنها سبب همه های پیچیده ماهیچه‌ای، جمع شدن حواس، حتی تصمیم گیری های آگاهانه ای نیست که در نجات کسی از غرق شدن دخالت دارد. تنها باید متوجه باشید در حالی که شرایط دیگر یکسان باشد و بسیاری از ژن‌های ضروری و عوامل محیطی دیگر حضور داشته باشند برای فقط یک جنین امکان وجود دارد که بدنی بسازد که بیشتر احتمال دارد کسی را از غرق شدن نجات دهد تا بدنی که الکل آن را می ممکن است معلوم شود تفاوت این دوجن در نهایت به تفاوت بسیار جزئی در یک متغیر سادهی کمی ربط پیدا می کند. گرچه جزئیات فراینده رشد جنین ممکن است جالب باشد ولی ربطی به واقعیت های تکامل ندارد. کانراد لورنز این موضوع را به خوبی بیان کرده است. جنها در برنامه ریزی استادم و برای زندگی خود برنامه می ریزند. آنها را بر اساس موفق بودن برنامه در کنار آمدن با اتفاقات و خطراتی می که در زندگی برای بقیه ماشین های بقا پیش میآید. داورشان قاضی بیرحم محکمه بقاست. ما بعدا به روش هایی می رسیم که با آنها بقای ژن را به توسط چیزی که رفتار ایسار گرانه به نظر می رسد می توان بیشتر کرد. اما اولویت اول و آشکار یک ماشین بقا و مغزی که برای آن تصمیم می‌گیرد بقای فرد و تولید مثل است. همه ی آن پرگنه این اولویت را قبول دارند. بنابراین حیوانات برای یافتن و رسیدن به غذا، برای گریز از گیرفتادن و خورده شدن برای اجتناب از بیماری و حوادث برای حفظ خود از شرایط نامساعد آب و هوا برای یافتن عضوی از جنس مخالف و ترقیب او به جفتگیری برای دادن امتیازاتی به فرزندانشان مشابه آنهایی برای خودشان لذت بخش بوده دست به هر کاری میزنند من مثالی نمیآورم. اگر نمونه میخواهید کافی است با اولین جانور وحشی که برخوردید دقیق شوید. اما میخواهم به نوع خاصی از رفتار اشاره کنم. زیرا بعدا که به صحبت از ایثارگری و خودخواهی می رسیم، لازم است به آن رجوع کنیم. این رفتاری است که در کل می شود برچسب ارتباط را روی آن گذاشت. وقتی یک ماشین بقا رفتار یا حالت دستگاه عصبی ماشین بقای دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد شاید بشود گفت که با آن ارتباط برقرار کرده است این تعریفی نیست که همیشه صادق باشد اما در مورد هدف فعلی ما مناسب است منظور من از تحت تأثیر قرار دادن تأثیر مستقیم و بدون برنامه قبلی است موارد ارتباط زیادند آواز پرنده باقی، زیر زیرزیره، تکان دوم و موهای گردن سگ، دندان نشان دادنهای شامپانزه، حرکات بدن و زبان انسانها، تعدادی زیادی از کارهای ماشین بقا با تحت تأثیر قرار دادن ماشینهای بقای دیگر به طور غیر مستقیم راه را برای زندگی بهتر جنهای خود باز می کنن. حیوانات برای مؤثر بودن ارتباط خود دست به هر کاری میزنند. آواز پرنده ها نست های پی, پی انسانها را مسحور و مبهوت خود کرده است. پیش از این به آواز پرزحمت و اسرارآمیز نهنگ های کوهندار اشاره کردند. این آوازها ها با دامنی شگفتاورش بسامدی دارد که کل صداهای گوش بشر از قررش های کمتر از سرعت صوت تا جیغ های مافوق صوت را شامل می شود. جیر های هفار راه روهای زیرزمینی را با دقت به شکل یک شیپور تقویت صدا یا بلندگو می سازند. آوازشان را به طور حیرت هاوری بلند می کنند. زنبور تا به زنبورهای های دیگر درباره جهت و فاصله منبع غذایی اطلاع دقیق بدهند. شاکاری از ارتباط که فقط با زبان بشر قابل مقایسه است. کردارشانستان به طور سنتی بر این باورند که علت تکامل علایم ارتباطی نفع دوسویه آن برای فرستنده و گیرنده بوده است. برای مثال جوجهای کوچک وقتی گم می شوند یا سردشان است با سردادن جیکجیک جیک بلند و تیزی روی رفتار مادرشان تأثیر میگذارند. اثر فوری این کار معمولا احزار مادر است که او جوجه را به سمت گروه خود هدایت می کنند. از این نظر می شود گفت که این رفتار به خاطر سود دوجانبهش تکامل یافته است زیرا انتقاب طبیعی بچههایی را ترجیح می دهد که وقتی گم می شود جیک جیک می و همچنین مادرانی را که ترجیح می دهند که به این جیک جیک پاسخ مناسب بدهند اگر بخواهیم البته ضروری نیست میتوانیم. توانیم مثل می صدای جیک جیک را معنادار یا حامل پیام تلقی کنیم که در این مورد میشود من گم شدهم فریاد هشداری را که پرنده کوچک سر دهم و من به آن در فصلیک اشاره می کردم میتوان حاوی اطلاع اقابی این طرف هاست دانست سودی نصیب حیواناتی میکند که این پیام را میگیرند و بر اساس آن عمل میکنند می میشود گفت که اطلاع صحیحی بوده است اما آیا هرگز حیوانات اطلاع ناصحیح هم میدهند آیا هرگز دروغ میگویند بحث دروغگویی در حیوانات زیاد در معرض سوء تفاهمات است بنابراین من سعی میکنم با آن دامن نزنم به یاد میآورم به سخنرانی بئاتریس والنگاردن درباره شامبازی دروغگوی معروفشان واشو رفته بودم واشو از زبان علامت آمریکایی استفاده میکند و های او برای دانشجویان زبان بسیار قابل اهمیتی است در میان شنوندگان چند فیلسوف حضور داشتند و در گفتگوی بعد از سخندانی روی این پرسش که آیا واشو می‌تواند دروغ بگوید بحث زیادی در گرفت. به نظرم گاردنرها را جالب تر از این برای بحث نمی‌دیدند. عقیده خودم هم همین بود. در این کتاب من از واژه‌های گول زدن و دروغ برخلاف آنچه مد نظر آن فیلسوفا بود، توجه آنها به دروغ عمدی و آگاهانه بود. مفهوم بسیار روشن و سرراستری را در نظر دارم. منظور من فقط آن کاری است که نتیجهش در عمل برابر با گول زدن باشد. اگر یک پرنده وقتی عقابی آن دوربر نیست، با استفاده از علامت عقابی این طرف هاست بخواهد همکاران خود را فراری دهد تا خودش غذای همه آنها را بخورد میتوانیم بگوییم درو گفته است. منظور این نیست که با تصمیم قبلی و آگاهانه قصد گول زدن دارد، منظور این است که آن پرنده دروگو با دور کردن پرنده های دیگر به غذا دست یافت و آن پرنده ها دور شدند چون در مقابل هشداری این دروغگو طوری رفتاد کردند که انگار واقعا عقابی در کار است. بسیاری از حشرات خوردنی مثل پروانه های فصل قبل با تقلید از ظاهر حشرههای دیگر که بد مزه، یا نیش زن هستند خود را حفظ می کنند. خود ما اغلب گول خورده و مگس راه راه زرد و سیاه بال بال زن را با زنبور اشتباه گرفته ایم. بعضی مگس ها که از زنبور تقلیب می کنند در فرید دادن بسیار استادند حیوانات شکاری نیز دروغ گویند سیاد ماهی در ته دریا صبورانه منتظر میماند تا با زمینه متن اشتباه گرفته شود تنها جایی که از او به چشم آید، بخشی گوشتی است که مانند یک تکه از کرمی که سر چوب ماهیگیری زده باشند در حال پیچ و تاب خوردن است این تکه از بالای سر این ماهی بیرون زده است وقتی یک ماهی کوچک تعمه نزدیک شود سیاد ماهی آن تکه کرم مانندش را در مقابل او میرقساند و با آن ماهی کوچک را گول میزند او را به طرف جایی که دهان ناپیدایش قرار دارد میکشاند. بعد نگاهان آرواره باز می گردد و ماهی کوچک به درون کشیده و خورده می شود. این سیاد ماهی با استفاده از تمایل آن ماهی کوچک به کرم مانند پیچان به دروغ می گوید که کرم اینجاست و ماهی کوچک که دروغ او را باور کرده به سرعت تومه او می شود. بعضی از ماشین های بقا از میل جنسی دیگران به نفع خود استفاده می کنند. گل ارکیده به خاطر شباهت زیادی که گلهایش به زنبورهای ماده دارند. زنبورها ها را ترقیب به جفت شدن با آن گل می کنند. آنچه از این فریب نصیب ارکیده می شود افشاندن گرده است. زیرا، زنبوری که به این ترتیب فریب دو گل را خورده گرده یکی را با آن یکی منتقل می کند. کمه شبها، که در واقع نوعی سوسک است با فرستادن نور توجه جفت خود را جلب می کند هر گونه ای الگوی خاص نور فرستادن خود را دارد به شکل خط یا نقطه و این مانع از آن می شود که افراد ها گیج شوند و ترکیب ناجوری از آنها حاصل شود درست همانطور که چشم کشتیران ها دنبال یافتن الگوی خاصی از نور انداختن فانوس های دریایی است کلمهای های هم دنبال آن شکل از نور هستند که رمز گونه خودشان را در آن ببینند. در نژاد فوتوریس ماده ها کش کرده اند که اگر رمز نورافکنی یک ماده از نژاد فوتینوس را تقلید کنند می توانند نرهای فوتینوس را گول بزنند. آدم به یاد سیرنها و لورلی میافتد. توضیح زیرنویس منظور زنان افسونگر اساتیوی که با آوازشان دریا را جلب و به سوی صخره ها میکشاندند و موجب نابودیشان میشدند. اما مردم کرنوال ایالتی در جنوب انگلیس را بیشتر یاد خرابکاران ایام گذشته میاندازد که چراغ های دریایی برای گمراه کردن کشتیها و کشاندن آنها به سمت صخره استفاده میکردند و بعد بار کشتی های آسیب دیده را قارت می کردن. هر وقت که یک دستگاه ارتباطی ساخته شود همیشه خطر وجود دارد که بعضی ها از آن در جهت اهداف خود استفاده می کنند ما که با این دیدگاه بزرگ شده ایم در تکامل صلاح گونه ها نهفته است طبیعتا فکر می کنیم و گونزنها به گونه های دیگر تعلق دارند. به شکارگرها، انگلها و مانند آنها، اما باید انتظار دروغ و فریب را داشته باشیم، و هرگاه منافع ژن‌های افراد مختلف از هم فاصله بگیرند، از ارتباط به صورت خودخواانه بربرداری شود. در مورد افراد یک گونه هم همینطور است. همانطور که خواهیم دید، دور از انتظار نباید باشد که بچه ها والدین خود را گول بزنند، شوهران زنان خود را فریب دهند و برادر به برادر دروغ بگویند. حتی این باور که پیدا شدن علایم ارتباطی در اصل برای تأمین منافع دو جانبه بوده و سپس مورد بهرهبرداری برداری گروه های بدخواه قرار گرفته بسیار ساده دلانه است. به احتمال زیاد چنین است که در همه ارتباط های حیوانی از همان ابتدا یک انصار فریف وجود داشته. زیرا در همه داد و ستت های حیوانی دست کم نوعی تزاد منافع وجود دارد. در فصل بعد راه پرقدرتی برای بررسی تضاد منافع از نظر تکامل معرفی می شود.